اصل 19 هم. ایسا وارد اریها شد و از میان شهر میگذشت مردی در آنجا بود به نام زکی که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود او می‌خواست ببیند که عیسی چنو شخصی است اما به علت کوتاهی قامت و ازدهام مردم نمی توانست او را ببیند پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود ای زکی زود باش پایین بیا زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت وقتی مردم این را دیدند زمزمه نارضایی از آنها برخواست آنها میگفتند او مهمان یک خطا شده است زکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت ای آقا اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او برمیگردانم عیسی به او فرمود امروز رستگاری به این خانه روی آورده است چون این مرد هم فرزند ابراهیم است زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مصل آورد زیرا آنان تصور می‌کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد او فرمود شریف سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد اما اول ده نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام یک سکه طلا داد و گفت تا بازگشت من با این پول داد و ستد کنید هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند ما نمیخواهیم این مرد بر ما حکومت کند پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد دنبال قلامانی که با آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت اربا پول تو ده برابر شده است. جواب داد آفرین تو قلام خوبی هستی. خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم ده شهر بشوی. دومی آمد و گفت اربا پول تو پنج برابر شده است. به او هم گفت تو هم حاکم پنج شهر باش. سومی آمد و گفت ارباب بفرما این پول تو است آن را در دستمالی پیشیده کنار گذاشته ام. از تو میترسیدم چون مرد سختیری هستی آنچرا که اصلا نگذاشتهی بر میداری و آنچرا که نکاشتهی دروم میکنی. ارباب جواب داد ای قلام پس نهاد تو را با حرفهای خودت محکوم میکنم. تو که می من مرد سختیری هستم که نگزاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم. پچه را پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم. به حاضران گفت پول را از او بگیرید و به غلامی که ده سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند. اما ای آقا او که ده سکه دارد؟ او گفت بدانید هر دارد بیشتر به او داده می شود و اما آن کسی که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد و اما آن دشمنان من که نمی بر آنان حکومت نمایم ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید ایسا این را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه کرد به دهکده روبرو بروید هم که وارد آن بشوید کره اولاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است آن را باز کنید و به اینجا بیاورید اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید بگویید خداوند آن را لازم دارد. آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که ایسا گفته بود دیدند. وقتی کره الاغ را باز می صاحبانش پرسیدند چرا آن کره را باز می جواب دادند خداوند آن را لازم دارد، پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختن، و ایسا را بر آن سوار کردند و همینطور که او میرفت جاده را با لباسهای خود فرش میکردند. در این هنگام که او به سرازیری کوه زیتون نزدیک میشد، تمامی شاگردان با شادی برای همه موجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و میگفتند: مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند میآید. سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند ای استاد به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند عیسی جواب داد بدانید که اگر اینها ساکت بمانند سنگ ها به فریاد خواهند آمد عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد بران ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می اما نه، این از چشمان تو پنهان است، و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد، و به دور تو حلقه خواهند زد، و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد، و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگری باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکرده‌ای بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت کتاب خدا میفرماید خانه من نمازخانه خواهد بود اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید همه روز عیسی در معبد تعلیم میداد. و سران کاهنان و ملایان سعی میکردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند. اما دیدند که کاری از دستشان بر نمیآید چون عاممه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش میدادند.